دوره هج اعوذ به نام الله که بخشاگنده و با رحمت است ای مردم، حرمت پروردگارتان را نگاه دارید که زلزله روز قیامت واقعه بزرگی است روزی که هر مادر شیر ای را میبینید که طفل شیرخوارش را از یاد میبرد و حتی هر حاملی جنین خود را از عظمت آن روز میاندازد و مردم را میبینی که چون مستان حیران و از خود بی خودند اما در حقیقت مست نیستند عذاب الهی شدید است گروهی از مردم هستند که بدون علم و آگاهی در مورد خداوند مجادله مینمایند و از هر شیطان سرکشی پیروی میکنند بر او شیطان چنین نوشته شده که هر کس او را دوست بدارد او نیز گمراهش گرداند و به عذاب آتش راهنماییش کند به مردم اگر در مورد زنده شدن دوباره در شک و تردیدید توجه داشته باشید که در ابتدا ما شما را از خاک آفریدیم و آنگاه نطفه کردیم سپس لخت خونی شدید و بعد پارهگوشتی به صورت تمام و ناتمام این کارها را کردیم تا قدرت خود را بر شما آشکار کنیم و در رحمها آنچه را صلاح بدانیم تا مدتی معین حفظ می کنیم سپس شما را چون کودکی بیرون می تا به رشد و تکامل خیش برسید برخی از شما می میرند و برخی دیگر به سن سال خردگی برده خواهند شد تا جایی که از فرد پیری هرچرا خوانده و دانسته است فراموش کند حتی زمین را در ابتدا خشک و مرده و بیگیاه می بینی اما هنگامی که باران را بران نازل کنیم به حرکت درآمده آمده جان میگیرد و متعاقب آن انواع گیاهان زیباب و شاداب را می رویاند. همه اینها به این دلیل است که او حق است. اوست که مرده را زنده می کنند و بر هر کاری توانا است. ان روز قیامت آمده است هیچ شکی در آن نیست و یقینا خدا کسانی را که در گورند زنده برمی‌آنجیزد در میان مردم کسانی هستند که همواره بدون علم و آگاهی و بدون راهنمایی و کتاب روشنی به مجادله در مورد خدا پردازند با تکبر و گردنکشی میخواهند. مردم را از راه نجات بخش الهی منحرف کنند بیشک در همین دنیا رسوا می و در روز قیامت نیز عذاب سوزان را به آنها می چشانی. و اگر کسی اعتراضی کند خواهیم گفت این دستاورد خودت است و خداوند بزرگ به بندگانش ظلم نمی کند برخی مردم فقط خدا را از روی حرف می پرستند. اینگونه آدم ها هر وقت خیری به آنها رسد نسبت به او آرامش و اطمینان پیدا می کنند و هرگاه بلایی دامنگیرشان از او روی برمیگردانند اینچنین چون این کسان هم در دنیا و هم در آخرت زیان می بینند. زیانی که کاملا آشکار است. به جای خدا چیزهایی را برای نجات و آرامش خود می که هیچ سود و زیانی برایشان ندارد بدانید که این اعماق گمراهی است حتی گاهی کسانی را برای نجات خریش می خوانند که زردشان نزدیکتر از نفعشان است بیشک چه بد تکگاه و همنشینی انتخاب کردند خداوند بزرگ کسانی را که به حقایق ایمان دارند و دارای عمل کردی به بهشت هایی که نرها جاری جاریس وارد می کند و قطعا خداوند آنچه بخواهد انجام میدهد هرکس گمان کند خداوند هرگز پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری نمی کند بهتر است خود را برای خط شدن با طنابی از سقف آویزان کند تا ببیند آیا این حیله می تواند را فرو نشاند و این چونین قرآن را با آیاتی روشنگر نازل کردیم. بدانید خداوند بزرگ هر را صلاح بداند هدایت می کند. کسانی که به هر ایمان آوردند و نیز یهودیان و سابعین و مسیحیان و مجوسان و مشرکان بدانند که خداوند در روز قیامت در مورد عمل داوری خواهد کرد. قطعاً خداوند بر هر امری شاهد و گواه است آیا نمی بینی هر کس در آسمان ها و هر کس در زمین است؟ و همچنین خورشید و ماه و ستارگان و کوها و گیاهان و حیوانات و بسیاری از مردم در حال سجده برای خداوند بزرگند و بسیاری نیز گرفتار عذابند بدان هر کس را خدا خار کند دیگر هیچ کس احترامش نمی‌گذارد و خداوند هر کاری را صلاح بداند انجام می‌دهد این دو گروه اهل ایمان و بی‌ایمانان در مورد وجود پروردگارشان به مخاسمه و جدال پرداختند بدانید کسانی که به حقایق ایمان ندارند برایشان لباس‌هایی از جنس آتش دوختند و آبی سوزان از بالای سرشان فرو ریزند آب سوزانی که هم درونشان را زوب می کند، هم پوست هایشان را و گرز های آهنین بر آنها مسلط است هرگاه بخواهند از این عذاب و این ومهندوه خارج شوند آنها را به با آن باز می‌گردانند و به آنها میگوگند بچشید عذاب سوزان را إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ونؤلؤا و لباسهم فی ها حریر. اما کسانی که به حقایق ایمان دارند دارای عمل کردی نیک و دارای عملکرد نیکو شایسته خداوند به بهشت هایی که نرها در آن جاری واردشان کند و در آنجا با دست بندهایی از طلا و مروارید آراسته شوند در حالی که لباسشان از حریر نرم و زیباست زیرا آنها به بهترین و پاکیز سخنان و راه ها هدایت شدند هدایت به راه خداوند ستودنی کسانی که به حقایق کافر شدند و مردم را از راه خدا و مسجد الحرام باز می‌دارند، گرفتار گرفتار عذاب دردناک خواهند شد مسجد الحرام محل امن الهی است که برای همه مردم چه آنها که مقیم هستند و چه آنها که از بیرون می یکسان است همه می توانند از آنجا بهرهمند گردند و هر بخواهد در این سرزمین با انحراف از حقیقت دست به ظلم و ستم زند عذاب دردناکی به او می چشانی و یادار هنگامی که به ابراهیم محل خانه خدا را نشان دادی و گفتم که هیچ چیز را شریک من قرار مده و خانه امرا برای تواف کنندگان و نمازگزاران و رکوع کنندگان و سجد کنندگان پاکیزه گردان و مردم را به هچ فرا بخوان تا پیاده یا سوار بر چترهای نحیف از راههای دور به سوی تو بیایند تا منافعی را که برای آنها در نظر گرفتیم ببینند و در روزهای معین به خاطر چهار پایانی که روزی آنها نموده خدا را یاد کنند از آنها بخورید و فقرای بینوا را نیز بهرمند کنید سپس آلودگی ها را از خود بزدایند و نظرهایشان را ادا کنند و بر گرد خانه شریف تواف کنند حج چنین است هرکس که حریم اوامر خداوند را محترم شمارد بیشک این کار نزد پروردگارش از هر چیز دیگری بهتر است. بدانید که دام ها بر شما حلال گشته است مگر آنچه دستورش برای شما بیان خواهد شد و از کلیه پلیری ها چون بوتان اجتناب کنید و از سخن زور و ناحق نیز بپرهیزید. همواره یک پرستانی برای خدا باشید که هیچ نوع شرکی به او نمی زیرا کسی که به خداوند بزرگ شرک بورزد همانند کسی است که از آسمان سقوط کرده در بین راه پرندگان او را بربایند یا طوفانی او را به محلی دوردست پرتاب کند آری هرکس شاعر الهی را بزرگ و محترم شمارد بداند که این کار نشانه وجود است که در دلخانه کرده است در چهار پایان تا زمان معین، منافعی برای شما قرار داده ای. اما انگاه که قرار از قربانی شوند، محل آنها همان خانه شریف خداست و برای هر امتی شیوهی قرار دادیم تا بر چهار پایانی که روزی آنها کردیم، نام خدا را ببرند. بدانید که خدای شما خدای اکتاست و فقط سراپا تسلیم او بابشید. ای پیامبر به آنها که در برابر عوامل الهی اند، بشارت ده همان کسانی که وقتی نام الله به میان آید قلبهایشان از عظمت الهی مملوب و از خوف می‌گردد و در مقابل مصیبت‌ها صبر و استقامت می‌نماغند و نماز به پا می دارند، و از آنچه روزیشان کردیم دیگران را نیز بهره‌مند می‌کنند شتران گوشتی را برای شما جزو شعاعر الهی قرار دادهاید در آنها برای شما غیر و برکت است هنگام زیب وقتی هنوز ایستادند، نام خدا را بر آنها بخوانید و چون پهلویشان به زمین رسید و جان دادند از آنها بخورید و هم فقرای قانع و هم فقرای معترس به قسمت خویش را اطعام کنید. اینچنین آن نعمتها را در اختیار شما گذاشتیم تا شاید شکر گذار نه گوشت آنها به خدا می رسد و نه خون آنها. اما تقوای شما به حرمت نگاه داشتن شما به خدا می رسد. اینچنین آن نعمتها را در اختیار شما گذاشت تا به شکرانه راهنمایی هایی که به شما ارزانی کرد خداوند را به بزرگی یاد کنید. ای پیامبر نیکو کاران را به پاداشی بزرگ بشارت ده. ان الله یدافع عن الذین خداوند مدافع کسانی است که به حقایق ایمان آورده‌اند. بدانید که خداوند بزرگ هیچ خائن ناسپاسی را دوست ندارد به کسانی که مورد ظلم قرار گرفتند و جنگی بر آنها تحمیل شده اجازه مقابله با دشمن داده شده است و خداوند بر نصرت آنها تواناست کسانی که از سرزمینشان به ناحق رانده شده اند، آیا غیر از این می گفتند که پروردگار ما الله است و اگر خداوند ادهی را به وسیله ادهی دیگر منکوب نمی کرد بدون شک دیرها و سومه ها و معابد یهود و مسیحیان و بسیاری از مساجدی که نام الله در آن برده می شود ویران می شود. بدانید هر کس خدا را در اجرای عوامرش یاری کند خداوند نیز او را یاری خواهد کرد قطعا خداوند مقتدر و پیروز است همان کسانی که چون بر زمین مسندتشان کنیم نماز به پامی دارند و زکات پرداخت می کنند و مردم را به نیکی امر کرده و از بدی و کاری نهی می بدانید آقبت و نتیجه همه کارها با خداست ای پیامبر، اگر حقانیت را را می کنند بدانید که قبل از آنها قوم نوح و عاد و سمود نیز پیامبرانشان را تکذیب کردند همچنین قوم ابراهیم و قوم لوت نیز این عمل کردند مردم مدین نیز چنین بودند و موسی هم تکذیب شد من به منکران و حقیقت مهلت دادم آنگاه به موقع گریبانشان را گرفتم تصور کن مجازات من چگونه بود چه شهرهایی را به خاطر رفتار ظالمانشان نابود کردیم بگونه ای که سخف خانهاشان خرو ریخت و چاهای پرابشان و قصرهای بلند گچگاری شدهشان بی صاحب ماند چرا مردم در زمین سیر نمی کنند تا دارای قلبهایی شوند که با آن حقایق را درک کنند و یا صاحب گوشهایی شوند تا ندای حقیقت را بشنوند زیرا در غیر این صورت با آنکه که چشما در ظاهر کور نیستند اما قلب هایی که در سینه ها نسبت به درک عقایت نابینا میگردند از تو شتابانه عذاب الهی را خواست دارند بدانند که خداوند بزرگ هرگز از وعده خود تخلف نمی کند. یک روز در نزد پروردگارد همانند هزار سال شماست که میشمرند، و چه شهرهایی که احلش ظالمانه رفتار کردند و من به آنها مهلت دادم سپس به موقع گریوانشان را گرفتم و سرانجام کارشان با من بود ای پیامبر بگو ای مردم من برای شما یک دهنده آشکارم بدانید کسانی که به حقایق ایمان آورده و عمل کردی سراسر نیک و پسندیده دارند مغفرت و رزق با ارزشی برایشان مهیاست و کسانی که برای رد و تخریب آیات و نشانعای حق تلاش می کنند بدون شک اهل جهنم هند. ما هیچ فرستاده و پیامبری را قبل از تو نفرستادیم مگر آن که آرزو می کرد بتواند از قدرت کلمات و آیات الهی بهره بگیرد و شیطان برای جلوگیری از این امر در آرزویش القاعاتی می افکند تا به این هدف نرسد اما خداوند القاعت شیطان را از بین می برد و آیات خود را استحکام می بخشید. بدان که خداوند بزرگ آگاه و حکیم است. هدف آن بود که القاعت شیطان مایه آزمایش کسانی گردد یا سنگ دلند و یا قلب و فهمشان نسبت به درک حقایق بیمار و ناتوان است. بدون شک ظالمان گرفتار عداوتی بزرگند تا آنها که دانش عطایشان شده بفهمند که قرآن حق است و از جانب پروردگارت آمده. آنگاه به آن ایمان بیاورند. قلبهایشان تسلیم حق شوند. و به مقام آرامش برسند بدانید خداوند بزرگ کسانی را که به حقایق ایمان بیاورند به راه راست و درست هدایت می کند. هنوز که هنوز است منکران حقیقت در مورد قرآن در شک و تردیدند مگر اینکه روز قیامت به طور ناگهانی فرا برسد و یا عذاب روزی که در آن دیگر کاری از کسی برنمی آید گرفتارشان کنند. حکومت مطلق در آن روز از آن خداست و میانشان قضاوت خواهد کرد و سرانجام کسانی که به حقایق ایمان آوردند و عمل کردی نیک و شایست داشتند در بهشتهای پرنعمت جای خواهند گرفت و کسانی که کفر ورزیدند و آیات نجات بخش ما را انکار کردند به عذابی خار کننده گرفتاراید همچنین کسانی که در راه خدا هجرت کردند سپس کشته شدند و یا مردند، خداوند همشان را به رزقی نیکو روزی میدهد قطعا خداوند بزرگ بهترین روزی دهندگان است و بیشک خدا آنها را به مکانی وارد می کند که باعث رضایت و کشنوبیشان خواهد بود بدانید که خداوند آگاه و بردبار است آن کس که به ناحق مجازات شده است اگر به همان اندازه تلافی کنند و سپس بر او چیره شوند و ستم کنند بدون شک خداوند یاریش خواهد کرد و خداوند بزرگ عفت کننده و آمرزنده است این بدان سبب است که خداوند شب و روز را از دل یک دیگر بیرون می آورد راستی خداوند شنوا و بیناست و نیز بدان سبب است که بفهمید خداوند بزرگ حق است و به جای او آنچرا که نجات بخش میخوانید باطل است و خداوند بلند مرتبه و بزرگ است آیا نمی که خداوند از آسمان باران نازل می کند؟ تا زمین سبز گردد بدان که خداوند بزرگ نکت سنج و آگاه است لهو ما فی السماوات و ما فی الارد و این الله لهوالغنی الحمید آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست حالان که خداوند بینیاز و ستودنیست آیا نمی بینی خداوند بزرگ آن چرا در زمین وجود دارد در اختیار شما گذاشته است؟ حتی کشتی که در دریا به پیش می رود به امر اوست او با قدرت و قوانین خود آسمان را نگاه داشته که جز به فرمانش بر زمین سقوط نکند حقیقتا خداوند نسبت به مردم رعوف و مهربان است او کسی است که به شما زندگی بخشید سپس همه را می, می و دوباره زنده می کند و همه این احوال باز انسان ناسپاسی می کند. برای هر امتی راه و رسمی قرار دادیم که به واسطه آن عبادت می کند. پس در این امر نباید با تو به نزاع برخیزند اما تو مردم را به سوی پروردگارت دعوت کن زیرا تو همواره بر هدایت راست و راستین قرار داری و اگر با تو به مجادله برخواستند بگو خداوند نسبت به عمل کردتان از هر کس دیگری آگاه تر است خداوند بزرگ میان شما در مسائل مورد اختلافتان در روز قیامت قضاوت خواهد کرد آیا نمیدانی که خداوند بزرگ از هرچه در آسمان و زمین است با خبر است؟ همه اینها در کتابی نوشته شده است و این کار برای خدا بسیار آسان است. آنها به جای خداوند چیزهایی را میپرستند که هیچ دلیل آسمانی ندارد و بر آن نیز آگاه نیستند. حقیقتا ظالمان یاوری ندارد. وقتی آیات روشنگر ما بر آنها خوانده میشود، نشانهای این کار را در چهره کافران میبینی چنان خشمگین میشوند که میخواهند آنها که آیات خدا را میخوانند حمله برشوند بگو آیا میخواهید شما را به چیزی بدتر از آن آگاه کنند؟ بدتر از آن است که خداوند به منکران حقیقت وعده داده است و چه سرنوشته بدی خواهد بود ای مردم برای شما مثالی زده شده به آن گوش فرادهید. کسانی را که به جای الله به خدایی میخانید هرگز توانایی خلق یک مگس را هم ندارند. حتی اگر همهشان جمع شوند و دست به دست هم دهند. اگر مگسی چیزی از آنها برباید باید نمیتوانند از او پس بگیرند. هم طالب و هم مطلوب هر دو ناتوانند قدر منزلت خداوند بزرگ را آنچنان که باید نشناختند. خداوند قدرتمند و پیروز است. خداوند هم از فرشتگان و هم از آدمیان پیامبرانی برگزیده است. بدانید که خداوند شنوا و بیناست و از آینده و گذشتهشان با خبر است و بیشک تمامی امور به خداوند باز میگردند. ای همه کسانی که به حقایق ایمان آورده اید رکوع کنید و به سجده روید و پروردگارتان را عبادت نمایید و همواره اعمال خیر انجام دهید امید آنکه رستگار شوید و در راه خداوند آنگونه که شایسته است جهاد نمایید زیرا او شما را انتخاب کرده است برانی که در دین هیچ مشقت و سختی برایتان قرار نداده زیرا همان آین پدرتان ابراهیم است او همه شما را مسلمان نامیده چه آن زمان و چه در این زمان تا پیامبر گواه و الگوی شما باشد و شما نیز گواه و الگوی همه مردم پس نماز به پایدارید و زکات پرداخت کنید و به خدا توسل جوید که او دوست و تکگاه شماست و خدا چه دوست و یاور خوبی است. فاقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اعتصموا بالله و مولاکم فَنِعْمَ الْمَولَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ رابس گوهد. خداوند بلند مرتبه بود از